دوچار هممغم قیر قابل حلی شدم و شبها بسیار ازیاد میشن و تا سوات ها و قصه میخونن راه چاره هم چیز آیا راهکاری یا ذکری وجود دارد؟ یکی از از کاری که وقتی انسان وامونده میشه از دست مشکلات و کلاپه میشه از استمرار بعضی از کارهای مشکل و سخ یکی از راهکارای این هست که سلام الله علیه رو صدا کنه علی علیه السلاط و سلام رو پیان بره گرام اسلام فهمودن که عناب علی یون اببا هازه الامة من و علی دو پدر این امت هستیم این ذکر شریف یا محمد یا علی, یا علی یا علی یا محمد پیانی فاینک شما خوب پیان انسران پیان شما ناصران ذکر هارون بخشیه چه وقتا زیادی آدم احساس سختی میکنه و ناچار میشه بیچاره میشه از مشکلات میتونه ایشون رو به زبان محلی خودش به زبان خودش بابا واسطه کنه بابا جم به فریاد من بریس بله